بسم الله الرحمن الرحیم الیف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین بنام خداوند بخشنده مهربان الیف لام را این آیات کتاب و قرآن مبین است اووبمه یا نذین كفروا لو وکن و مسلیمین چه بسا آرزو میکنند کاش مسلمان میبودند زوم یا قول و تم فسوف وولهیم عمل و آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها आनंद را غافل سازد ولی بسودی خواهند فهمید وما اهلکنا من ولها کتاب ما اهله شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر این که عجل معین داشتند ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هذكروا كي هذا أجل خد في شيء نميجرد وثان أرقب وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقفتا عند أي كثير الزكر يعني القرآن برتناوت الشداء مسلمن دیبانهی لو ما تأتینا بالملائکت این کنت من الصادقین اگر راست میگویی چرا فرشتگان را برای ما نمیابری ما ننزل الملائکت الا بالحق و ما اذا منظریم اما اینها باید بدانند، ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم، به هر کار نازل شوند، دیگر به اینها مهلت داده نمی شوند. ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور آن را پاسداری می کنیم. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ ما پیش از نیز در میان امت خوی نخستین فرستادین وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْدِئُونَ هیچ پیانبری به سراغ آنها نمی مگر این او را به باعت می میکرفتند کذالک نسلکهو في قلوب المجیمین ما این چنین و با استفاده از تمام وسائل قرآن را به درون دلخواه مجرمان راه میدهیم لا يؤمنون به و قد خلت سنت الاولین اما با این حال آنها با آن ایمان نمیابرند و سنت اقوام پیشین نیز چنین بود ولو فَتَحْنَا به بَابًا مِنَ من فِيهِ ای فاللوفی یا و اگر از آسمان بروی آنان بگوش گیم و آنها مرتب در آن بالا روند لَقَالُوا إِنَّمَا این أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ بل نحن باز میگویند ما را چشم بندی کرده اند بلکه ما سر تا پا سهر شده ایم. جعلنا فی السماء و ما در آسمان برج هاگی قرار دادیم و آن را برای بینندگان تزین کردیم. وحقن گ میشه ق و میوایم و آن را از شیطان مترود حفظ نمودیم این نیست و مگر آنها که استراق سمع کنند که شهاب مبین آنان را تعقیب می کند و الارض مدرنا و القینا فیها رواتی و انبتنا فیها من کل شیع موزون و زمین را گسترده ایم و دران کوهاوی ثابت کرده ایم و ترگیاخ موزون دران رویان ده وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُو بِرَازِقِينَ و برای شما انواع وسائل زندگی در انقرار تادیم و همچنین برای کسانی که شما نمیتبانید با آنها روزیدهید وَإِن مِن شيء إِلَّا عِنْدَنَا خَذَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ خداین همه چیز نزد ماست ولی ما جز به اندازه معیم آمرا نازل و ارسلنا لواقح من و بادهای باردار کنند را فرستادیم آنگاه از آسمان آب رو ریختیم و شما را با آن سیراب گردانیدیم در حالی که شما توانایی ذخیره کردن آن را ندارید و اینا نحن نحی و نمیت و نحن و این ما هستیم که زنده میگردانیم و می و ما وارث همه اشیا هستیم و بیگمان آنانی را که پیش قدم شده اند شناخته و بیگمان آنهایی را که عقب مانده اند نیز شناخته وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وبگو من پروردگار تاست که ایشان را حشر میکند حقا که او صاحب حکمت و داناست وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ بیگمان انسان را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریدی و, من من و جن را و جنرا از پیش از آتش گرم و سوزان آفریدی. و اذ قال ربک للملائکت اینی خالقون بشرا من فلسال من مسنون و بیاد آر وقتی را که پروردگارد به فرشتگان گفت بیگمان من انسان را از گل آواز دهندهی بدبوی متغیر آفریده فَإِذَا فا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحي لَهُ ساجدين پس چون پیکر او را راه کردم و در آن از روح خود دمیدم پس به او سجده کنان بیفتید فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ كلهم اجمعون. پس همه ی فرشتگان یک جاگی سجده کردند. إِلَّا إِبْلِيسَ أَمَا يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ جزء ابلیس که ابا بود متکبر که باشد. قال يا ابليس ما جزء ابلیس ابا کرد از اینکه با سجده کنندگان باشد. خداوند فرمود ای ابلیس چرا سجده کنندگان نیستی قال من, من گفت من هرگز حاضر نیستم بشری را سجده کنم که او را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریده‌ای قال تطول منها فانك رجيم خربند گشت از اون جا بیرون شدی زیرا فروندا شده ای و ان علی کلامه تا الیوم الذی یعنی که تا روز قیامت بر طلا علت است قال رب فانذرنی گفت ای برگ من پس مرا تا روز که مدگان برنگ شوندد مهلت ده خدا بند این پس بیگمان تو از جمله مهلت یا افگان تا روز؟ وقت مقرر شد. قال رب بما لهم في گفت ای پروردگار من، با سبب آنکه مرا گمراه کردی، بیگمان من نمط روی زمین را برایشان زیب و زینت میدهم و پیگمان همه ی ایشان را. گمراه می ساختند مگر بندگان مخلص تو از ایشان قال هذا خداوند فرمود این راه مستقیم من است این عبادی لنس لک علیم سلطان ایلا من اتبع که بردندگانم تسلط نخواهی هست مگر گمراهانی که از تو پیروی میکنند کنند و این نجا انم لموعدهم اجمعین همونی تا ساعت وا طی در دارد و برای حدارری گروه معینی از آنها تقسیم شده اند. این و ن تمهیزکاران در باغهای سرسبز بهشت و در کنار چشمه های آن سرشتگان الهی با آنها میگویند گویند داخل این باغ ها شدید با سلامت و امنیت و نزعنا ما بی حضور من غل اخوانا على سور هر گونه حسد و کینه و عداوت و خیانت از سینه آنها برمیکنیم و بر روحشان را پاک می در حالی که همه برابرند و بر سریرها روبروی روی یکدیگر قرار دارند لا من هرگز خستگی و ماندگی به آنها نمیرسد و هیچکا از آن اخراج نمی گشتند نسبه ای بابین اننی انا بندگانم را آگاه کن که من غفور و رحیمم وان عذابي هو العذاب الی ولیس ان هار اگا کن که و بحیصر من حساب درناکی است و نبیه هم عن ضیب الراحی. و به آنها از لهمانهای ابراهیم خبرده ازدخلو علیه فقارو سلاما و لگن منكم وجلون همگانی که در او بارد چرند و سلام گفتند ابراهیم گفت: ما از شما بی ناکیم قالوا لا توجد لنا بشاره كذلك المولى عليم گفتند لطیر ما ترى به فسری دانا بشارت دهیم قال ابشرو تصدون على امم فلن يلقىوا فبما تبشرون گفت آیا به من بشارت می‌دهید با اینکه پیر شده ام با چه چیز؟ بشارة مدهين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قفتاند ترى بحق بشارة مدهين اسمع يوصان مباش قال ومن يطنق من رحمته ربه إلا الضال گفت کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش معیوس می شود؟ قطبكم سپس گفت معمولیت شما چی؟ ای فرستادگان خدا قالو انا گفتند ما به سوی یک قوم گناهکار مأموریت پیدا کرده این إلا آل اجمعين. مگر خاندان لوط که همگی آنخارا نجاث خوید داد الا لم قَدْ قدنای و جد هم سرش که مقدر داشتیم از باز ماندگان باشند فلم جاء آل لوت المرسلون امگامی که پرستادگان خدا به سراغ خاندان لوت آمدند قال اینکم قوض من که شما گروه ناشناسی هستید قالوا بل كانوا ما همان چیزی را برای تو ایم که آنها یعنی کافران بر آن تردید داشتاند واتیناک بالحق وانا لقادقين. ما واقعیت مسلمی را برای تو ایم و راست می گوییم فَأَثْرِي بِأَهْلِكَ بِقَصْرٍ مِنَ اللِّينِ وَاتَّبِعْ أَدَبَهُ وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَيْكُم أَحَدٌ وَمُذْ شب دار دار با خود بردار و ببر تو تبهتن بال سر آنها حرکت کن احد از شما به پشت سر خیش ننگرد و بهمان جا که معمور هستید برید وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذلک الْأَمْرَ أَلَّدَى بِهَا أُولَئِنَ وَمَا بَلُوتْ این موضوع را وحج فرستادیم که صادقاها همه آنها ریشکن خواهند شد وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَّبْكِرُونَ از سوی دیگر اهل با خبر شدند و به سوی خانه لوت آمدند در حالی که به یکدیگر بشارت میدادند قال فلا لوت گفت اینها مهمانان منند آبروی مرا نریزید الله ولا و از خدا بپرهیزید و مرا شرمنده نسازید قولوا اولم ننهك عن العالمن گفتند مگر ما تو را از جهانیان نخیه نکردیم. قالا اولائ بنات ان كنتم فاعلين دو دختران من حاضرند اگر خواهید کار صحیح انجام دهید یعنی با آنها ازدواج کنید و از گناه به آلودکی بپرسیشید لعمرو که اینهم لفی سکرتهم یعنه هون فا اقدتهم مشرفی به جان سوگند اینها در مسیح خود سرگردانند سرانجام به هنگام طلوع آفتاب سیحه آفتارات رو گره فجعلنا عَالِيَهَا تَافِلَهَا وَأَمْصَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سپس بارای با آن را پاگیل قرار تادیم و باران از بر آنها سرو ریختیم اِنَّ ذلك ذَلِكَ لَآيَاتٍ در این سرگزشت ابرت نشانه هاییست برای خوشی آران این مقیم با ویران های سرزمین آنها بر سر راه هموار ثابت و برقرار است این نفی ذالک لآیت در این نشانه برای مؤمنان و این کان اصحاب الایکت لوالین اصحاب الایکت مسلمن قوم ستمگن بودند فانتقمنا منهم و انهما لبی ما مبین ما انتقام گرفتیم و این دو یعنی قوم لوت و اصحاب ایکت شعرهای ویران شده ایشن بر سر راه اولا قال ولا قد كذب أصحاب الحج المرتلين اصحاب الهجر يعني قوم السمود قام برمز تكذيب كثر واتيناهم اياتنا فكانوا عنها مورضين ما اجاءت خضراء برى انهار فاستودين بل انهار اظن دوي و کانو من الجبال بیوتاً آمینین آنها خانه امن و امانی در دل کوها می ترفشیدند فأخدت هم اما سرنجم انجام سیحه مرد بار صافکا هم آنها را فرو اما اغناعن عنهم ما کانو یکتبون و آنچه را به درست آورده بودند آنان را از عذاب علاقی نجاب نداد و ما خلقن السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و این ساعت لآتیت فصفحیت الجميل. ما آسمان و زنین و آنچه میان اندوست جزب حق نافریدیم و في ساعه قطعا فرا خواهد رسید از آنها یعنی دشمنان به خوبی حسس نظر کنند این ربک هو الخلاق العليم پربارک تو آفریننده ای آغاز ولقد لقد اتيناک سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما به تو سورۀ فاتحه و قرآن عظیم دادی لا تمدن عینیک ل ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علهم واخف جناحممنن بنابراین هرگز چشم خود را به نعمتهای مودی که به گروههای از آن ها یعنی کفار دادین مکن و بخاطر آنچه آنها دارند غمگین مباش و بال و پر خود را برای مؤمنین سرو دارد و قل اینی انن نذیر المبین و بگو من انصار کننده آشکارم کما انزلنا على المکتسمین ما بر آنها عذاب میفرستید، همان گونه که با سیجگران آیات الهی فرستادیم. الّذین جعلوا القرآن عظيم، طبات ها که قرآن را تقسیم کردند. و ارددك لسألنهم أجمعين. بسفرکار از ثغند از همه آنها سؤال خواهیم کرد. عمّا كانوا يعملون از آنچه چه عمل میکردند بادادیم و عن المشرکین. آشکار آنچه را معموریت داری بیان کن و از مشرکان روی گفتتم ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد الذين يجعلون مع الله إِلَهَمْ آخَرَ فسوف يعلمون آنها که خدا معبود دیگری قرار دادند اما به زودی می فهمند وَلَقَلِ مَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ ما می دانیم سینه تو از آنچه آنها می تنگ می شود و ترا سه ناراحت می کنند برای دفع ناراحتی آنم پربرگارت را تسبیح و حمد گو کن و از سجده کنندگان باش و عبود ربک حتی و پربرگارت را عبادت کن تا یقین یعنی مرد سرارت